بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين والى وصحبه اجمعين وبعد بما يقتضي البحث والتاديد ولكن هذا الدين مهيدا هلا بحث قبلتي كلاس همين مشرو بكونين بحث تایید و حفظ دین از اثرات خداوند ما میدونیم که خداوند در قرآن گفته ان نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون ما ذکر یعنی قرآن رو نازل کردیم ما حفظش میکنی قرآن حفظ شده توسط خداوند خدا خدا و خداوند خودش متکفل به حفظش شده و شکی در حفظ خداوند هم نیست قرآن 1400 ساله که همون قرآن یک حرفش زیر و پایین با بالا با و نرفته قرآنی که ما داریم در, در این قرآن مباحث علمی هست بیان شده از برقاداشتن نماز و و احکام روزه و خیلی چیزه هست که بیان نشده به طور مفصل اومده مجمل اومده مثلا قیم و صلاح دیگه نمی که چطور نماز رو بکنه قرآن نیازه به شرف داره بخاطر همین خداوند در قرآن میگه خداوند در قرآن میگه وانزلن ایلیک الذکر لتو بینا لیناتی من نزل ایلیهم وانزلن ایلیک الذکر قرآن را نازل کردیم برای اینکه تو تبیی به مردم تبیین بکنیم چون هدف از فرستاده شدن قرآن و وحی کردن قرآن اینی که مردم بهش عمل بکنن، تدبر بکنن. وقتی که چیزی نفهمن و چیزی تبیین نشد از طرف رسول الله صلی الله علیه و دیگه اون قرآن معنی نداره، دیگه اون قرآن نمیتونه معناکی باشه در انجام دادن طاعات و عبادات. به خاطر همینی که خداوند همونطور که قرآن رو حفظ کرده، سنت الحفظ یاده. تا این قرآن و سننه ما بنتمش عمل بكده شو نجا سنه محفوظ نمونه ما نمتني بالقران بدنا نعمل بكني بدستورات با الخدام باجراء بكني ولكن هذا الدين ولكن هذا الدين محفوظ من الله تعالى لم يهتم العظماء ولم اهوا على الضلال لا عنه ولا قط فلا يجتمعنا على التركيز المعيز ولا على طويل الضغط إنه يقع في مراضي القوة أو مراضي البعض والحاكم منهم يتكلم بحسب إشتاله وقوة معرفي فإن قدر قد خطره وأن أرور في نفذه فلو أنه واحد الله ربنا بل محفوظة سبب سی و غیر ممکنه که ولما بر گمراهی چ با به عمش و چ با به غیر مرما بیایان با هم همد بشه. غیر ممکنه که هم علمما اشتباه بکنند غیرکنه. و همونطور که طلا اجتماع ثناین على توفیه دضیف همونطور که دو تا از اونولما یعنی از ولای اسلام مشت نمیشن بر توصیق یک ضعیف و ضعیف که ذعت مشخص شدهه.نی بیایان دو تا عاعلم، یک زعیفی که زعفت مشخص نجده توسیخش بکنن و على تضعیف ثقه و نه همین که بیان یک ثقی را تضعیفش بکنن الان اون ثقیی که توسیخش مشخص نشده مگر از جهت خودمون دوتا عالم الان بحثش مفصله از بحث همین جملات که اگر بخوام درش رو باز بکنیم دیگه خودش وقت میخواه وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة ومراتب الضحف اختلاف علماء در توسيق تجريف رابعان اختلاف در رتبها هست يكي مثلا العلمي عزل هاضعلمي قبيترش بدونه ديگري كمي زعيفتر در صورت دي كي قفتم جرح مفصل در امور دون باشه بحث توسيق تعديل عام والحاكمو منهم يتكلم بحسب اجتهادي وقوه معارفي يمكن محاكم الا امامي وقتی که حرفي وسخني درباره يک راوي با اندازه‌ی معلوماتي داره معلوماتي هست که اون شخص داره درباره اون راوي فان قدر خطا في نقي فله اجر واحد بقى شخص اجتهاد بکنه به واحد معلوماتي که داره اجر یک اجرو داره والله المعرفه و درشت اني اگر اون حاکم حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بفرمایان حكم اذا حكم الحاكم فاجتهد فا فاصاب فله اجر وإذا حكم فاجتهد فا فاخطا فله اجر یعنی شخص حب کنه بری قاضی در صورتی که اهلیت حکردن دا رو داشته باشه نه اینکه بر اساس هوا و هوس باشه به قول عربی یه سنگ رو خورد میکنه یا نه نه اهلیه جرح رو داشته باشه بیا جرح بکنه بعد از شناخت یعنی م... بررسی حال راوی اگر حرفش دقیق و درست باشه دو تا اجر داره در غیر این صورت یک اجرو داره یعنی باید از دفاع از دین برای دفاع از دین واس بیاس درباره راویان تصف بگه باید سخن دیگه به دفاع از دین دفاع از حریم سنت نبوی بگه و هذا والا قيمه اذا تكلم في نفس شيء ولا شيء في حزني وغلطي فان كلامه فيه من جات مواظفه دي فهو على نار يوقي جاتو قسمه اخیش کرد اون قسمتا درباره حدیث بود الان درباره عدالت راوی هست از اعتقادی اونها گذشت هر که بود در مسائل حفظ و اتقان این مسائل گذشت الان یک مسئله دیگه هست و جرح در عدالت خب فرو من مثل مثلا بدات شكل غليظ باشه مثل رب سب الصحابه تجهم و ادعاء خلق القران هاي بدعه غليظه و منهم ومن هم؟ <مثل> <فسو> <مثل> <مثل> من, من بدعه و دون ذره بس دو تا دو تا قسمته یکی بدعت خودش یا بدعت غليظه يا بدعت خفیفه بدعت خفیفه مثل بدعت صوفيا از کار بعد از نماز و نمیدونم فلان و فلان اوراد و این مسائل این از لحاظ خود تقسیم تحسين بدعت تقسیمات بعدی به اعتبار راوی هست اون راوی که این بدعت رو داره و من هون و من هون از داعی بدعت بدعتی و من هون ما و ما بینداره ناو کنید بعض جمعه راویانی که بدعت دارن سه سنفن یکی دعوت میده به بدعتش یکی اصلا کاملا متوقف شده در بدهتش و یکی بین و بین نه دعوت میده نه دعوتم نمیده یعنی به نحلی حد وسط رو به قول خودش گرفته فمتا تو جنبه الان نگاه کنید این همه درباره اون کسی که بدهتش غلیظ نیست اون کسی که بدهتش غلیظه کاملا رو بایدش ترد میشه کسی که به دعوتش غلیز نیست خب سه حالت داره دعوت میده دعوت نمیده یا بین اونها اگر کسی که دعوت بده این شخص یعنی دعی به دعوتش باشه این شخص روایتش نقل نمیشه دنبالش اگر دعی به دعوتش نباشه ساکت بشه در برای اون بدهتش اون روایتش رو میپذیرن اینه خبت برده در غلط غلط خوار و جمعیه و رافت بده اونهایی که حالا بدهتشون غلیزه مثل خوار جوجه همین و رافت خبت خبت الان بدهتش خفیف مثل ست شعیور بر تردونستان علی در خلافت بر عثمان رضی الله عنه فقط همینا. علی رو برتر میدوننن برای واس در خلافت این تشیع قدیمه نه تشیع امروزی ارجاح هم بحث ادعای این که ایمان کم و زیاد نمیشه خب والله ما که خطابیه و الاوله از حدیثی فلک استکلیه استحلال بکنه اسلفی ها مسلک خطابیه از شیعیان بیاد استحلال بکنه بگه درو ما برای رسول الله میگم نبر علیهش بیا تجویذ بکنه درو گفتن در دین این اشخاص اصلا به هیچ وجه احادیثشون پذیرفته نمیشه, نمیشه. و ازشون روایت نمیشه. فاضل شیخ ابن نووه را العطاء اوجب التكفیر بعد بعد للبعد او تبيعا او لاوجبت العصبيه ونالا من ذلك الطعم من تكفير و تبيعا و هو كذيب في سماقه سماقه من, من, من المتقدمين والذي إتقرر تقرر عندنا أنه لا تعتبر المضارف في الرواية ولا نكفر عنه كملة إلا بإمكان متوازن من الشريعة فإذا اعتبرت ثالثا الظهما إلينا الغرع والضبط والتقوى فقد حصل معتمدا نعتقد الرواية ممكن أن يقول شيخ مون ابن باه ومزاها يميك يقول العقاية اختلاق در عقيدة منزولة سبب شده که همدیگر رو تکفیر بکنن علماء یا تبیع بکنن و سبب شده که عصبیت پیش بیاد این, این رو تایید بکنه و دیگری کسی دیگر رو تایید بکنه اشعریت و ماتر زیدیت و دیگر اعتقاد ها پیش اومده و سبب شده که همدیگر رو تبیع و تفسیق بکنن و این هم بیشتر عصبقی متوسط از متقدمیه یعنی بین 150 تا 300 این طبقه متوسط از متقدمی، کلا اوج اعتظال بود، اوج تجهم و اوج اشعریت و دیگر مذاهب فکری و عقنانی. میگه اون چیزی که ما خلاصه و جنبندیش میکنیم و مذهبی میگه، میگه که اینچین این مذاهب در روایت تأثیری نداره، در افضل روایت، چون روایتها دیگه ثابته. در قرن دوم دیگه کتاب ها نوشته شده، کتاب های صحیح و حادیث جمع بری شده و، رابیان مبتدع خیلی کمند. استاد کسانی که از لحاظ بدعت غلظت دارند خیلی کمند. کم كم بودند در اون طبقات مشخص شدند. می این که ما هم تکفیر نمیکنیم اهل قبله الله از شاعره از اشعاعره از مبتدع تکفیرشون نمیکنیم. مگر اینکه متواتری از شرع و دین را انکار بکنند. فاذا فا اعتبرنا ذلك و ضمن اليه الورع والتقوى والحسن معتمد معتمد الروايه. اگر این چیزینی مطالبی بده دلالت دیگه یعنی یک شخصی مثلا نیاد چیز متواتر در دین را انکار بکنه و شخص صاحب برعه و زفت حدیث باشه میگه میشه بر رویتاش اعتماد کرد مثل مثلا حماد ابن سلمه یا دیگر رابیانی که متهم به ارجاه هستن یا امام نسایی که متهم به تشیعه متهم به تشیعه این رابیانی که این اینچنین انتقال شدن و چیزی متوااطبی رو از دین انکار نکردن نیوانند حدیث و زیر سوال ببرن این چین رابیانی که معرووط هم به ور و ضبطشون این جین آالما ازشون میفیم و شکی در رو رو نداریم. و ح با مشاژ اوشحلتن این نفربی بله ما مشاافه می که من شهادت و دواهه تمامي المبتدعي را مفسر لما جاء خطبيه الرسوافس قال الشيخ هنا وقال عليكم الرحمه قال الشيخ هنا ماذون حمون بن وهب الشيخ هنا صح وهل في اي من المذاهب طب انا ارد الشهاده بالتوبه ولا يقبل لم يقبل فمن رد الشهاده بتهمه لم يقبل فكان الرحله المنتذره بل اونم میگه شیخمون به بحثی که آیات و بحث مبتدی در اون چیزی که تایید بر مذهب شیعه هست در نصره علی ماطری میاد احادیث رو نفی میکنه آیا میتونی ازش بفهمید یا نه می یکی کسانی که شهادتش رو مردود میدونن ازش نپژدند اصل شهادتش رو زیر سوال بردن و اما کسی که دعوتگر به بت‌پرستی باشه باید احادیثش ترک بشه به خاطر اهانت بهش بشه به خاطر که توهین بشه و به خاطر اینکه مردم بشناسنش بعد احادیثش کلا ترک بشه تا مردم بر باشن تا اینکه مذهبش برچیده بشه مگر اینکه یک آثاری داره یک روایتی داره که ما به خاطر اون روایتش میامو حدیثش نقد میکنیم به خاطر مثلا به فرد شنیدنش از راویان بزرگ مثلا از ازاویای شنیده هرچنک متشید مثلا از ظهری به خاطر سماعش از بزرگان از کسانی که مثلا ارتداد راویان از اونها کم هستن میاییم از اونها نقل می کنیم در غیر این صورت در صورتی که مشهوره مثلا رواهات های مشهور رو ندارن رواهات های خوب رو ندارن در غیر این صورت داعی به دتشون باشن هیچ وقت ازشون نقل نمی کنیم ازشون حدیثی نمی پذیریم ی على الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأحوات فإلا حلقنا محراب الجارح وجدت تسيق المنوح من جائز الامر فلا تحفظ بالمحياة للغاية من المنوح وإلا كانت الإنترنتيق المنوح فتأنت فترح بل، ميكي ينبغي أن, تت... أن تتفقد حال الجارحي مع من تكلم فيه ميكي كالنغد عزيك عالمي مبني بل عالمي ديك باید بیاید بررسی بکنه حال اون کسی که جرح داره می‌کنه حالا خصوصا مثلا ما خیلی قواعد داریم در بحث جنای ذری مثلا شهادت اقران در همدیگر دیگه نمیشه مثلا شما به عنوان مثلا 7 تا شاگرد هیچ وقت گواه شما مثلا به در شما پذیرفته نمیشه چون همه اقرانیک و بین اقران همیشه یه نوع تنافس و یه نوع مسابقه هست شهادت اقران بر علی همدیگر پذیرفته نمیشه هر چقدر مثلا یکی از شما مثلا خیلی از لحاظ علمی از لحاظ تقوا بالاتر باشه این یک از قواعد به معنای قاعده جرح و تعدیل که اینجا مثلا یک ای اشاره ای هست به این مبحث پس همینطوری نیست که مثلا ما هر جرح رو به تعدیل کنیم هر جرح رو نه می مثلا به فرض حالا در ضمن همین مسئله میتونیم تونیم بگم جایی مثلا یکی هستی که که با اون شخص مجالس نداشته مثلا خود امام ذهبی وقتی که میاد در کتابش کتاب میزانه کنه در ترجمه یحیی بن معین چون بحثه کتاب میزانش است درباره راویانی که درباره اش صحبت کرده کردن از جمله علی بن مدینیس امام بن عقیلی در کتاب ضعفاء از علی بن مدینی یاد میکنه و تضعیفش میکنه کسی که مشهور به عدالت و کسی که مشهور به میگه یا یا اما عقلك اما تدر مای خوشون ما بااس اما تبر که ایمان فیمت ت ت کل ما این مفهومش نق میکنه. ا رقای عقل نداری نمیدونی چسب کلت داره خارج میشه نمیدونید جوون کی داره صحبت میکنیم. باید ما اون جاره حالش بفهمیم که چگونه درست جرح میکنه این از ضوابط جوبه کرده همینطوری نیست که ما هر جی را بپذیریم. بله هم همچنین ازجور مسائلی که با در حال اون جاره اونعا می که درجه و تدلیل میکنه باید از حاضر اعتقادیش هم بشنسید، شاید مثلا شیعه هست، اون راوی که سنی مذهب جز اهل حدیث را تجریح میکنه. این مسئله بعد اندار گرفته بشه، اگر فهمیدی میگه فا این لا خلک این و وجد توفیق المجروحی من جهت اخرى فلا تحفل من و به غمزه المبهنه، اگر یک شخصی دیدی که یک جارحی که منحرف از حاضر اعتقادی تذگیف میکنه یک راوی، و در مقابلش که کسی دیگر تاییدش میکنه توسیقش میکنه میگه دیگه طرف اون روایت جارح طرف اون نقد جارح نباید داری و این لم تجه توسیق المغموز فتا و ترفه و اگر توسیق ندیدی اون کسی که صاحب اهل و احوا و فدعت هست داره اون رابی رو زیده سؤال میبره دیگه در اونجا مستقیما از حرفش نپذیر مستقیمن حرفشو قبول نکن. баjdkam таъниму تعنی و боши داشته шейхуна Қала шейху Абдувата раҳимаҳуллоҳ ва мин замика инқилоби воқеъии убайи муттавафи ва аҳли ҳадс Қада баъд байна муттавафим ауда ба салом раъди инқилоб ялло баҳси ин кило ҳамин баҳри рӯзи худмона ҳсаб қадима ҳам буд бин аҳли ҳдис онҳо می‌گاد میر کرده یاد کرده از کسانی که با هم در اون دوره‌ی خودشون اینو اختلاف داشتن مثلا الان عصر خودمون هم اینطور بین کسانی که متمایل به مذهبن یک تصوف گرایی دارن و بین اونهایی که جز اهل حدیثن این که اصطلاحی هست هم دیگر هم جرح میکنن و هذه و هذه غمضه لا يقص منها الا العالم وهو في شؤائر السميع و لا احصو ذلك بالعد به دخول زیرا كثيرا از احوال حفظی عنا لا يكفي تامين حدي من الوظيعه اي فرعي بل لا من معرفه القواعد الاصوليه والتمييز بين التميز بين الواجب والجائز والمستعين قبل المستعين عاده هو مقام خاطئ اذا طالب في محقق الصوفيه طلب في حديث المعاده الماليه فقد دارني بالمعارضه والسائر میگووه که این غم قطتون لا یخ منها ال العالم. می این این شدتی هست که ما داریم به کار میبریم گاه وقت خیلی مثلا به غیررت من بعدند میخوره فلانی سوفری هست انی نمیدونم گمراه فلان هیچچین الفازشا ما به کار ببریم بشنیمت. جاهایی مثلا شخص به غیرش بعد مثلا فلان عاال ده ویزیون می بینه تصوق به در جالهچین از شدت می این غم تون. این شدتی که ما ببینیم در اختلافاتی که بین اشخاص هست میگه که کسی فقط ازش سال میمونه که عالم باشه و درک دینیش و شروع دینش بالا باشه میگه که ولا احصر زالتا فی العلم بالفروع و این میگه مسئله را انحصارش نمیده در علم فروع علم فروع علم مسائل مثلا فقه و مثلا مسئله میگه اختلافات تنها در این مسئله فقهی نیست چون خیلی از صوفی ها هستن لا يفي بتمييز حقه من باطله علم الفروع هيك نميشه عثارش باخبر شده علم بفروع يعني مشكلش در علم فروع نيست مشكلة مشكلش بالاتر علم فروع باشه بشاي يعني شاید مشكل داشته باشه اعتقادي داشته باشه و مشكلة داشت داشت باشا. باشا مشكله فروعي داشته باشه بل لابد من معرفهت القواعد الاصوليه والتمييز بين الواجب والجاي والمستحيل عقلا عقلا عادة بعد این سری مسائل رو بدونه از یعنی اون کسی که میخواد نقد بکنه صوفی رو نقد بکنه یا صوفی می‌خواد اهل حدیث رو نقد بکنه بعد این سری مسائل رو بدونه قواعد رسولی قواعد فقهی و اون مسائل اعتقادی که بتونه تشخیص بده بین اون چیزی که عقلا جایز عقلا جایز نیست این مسائل باید هر دو طرف باید در نظر بگیرن میگه و این مقام مقام خطرناکی هست این جایگاه جایگاه خطرناکیه نقب همدیگر کردن چون اگر کسی بخواد به خودش اجازه بده که به کسی نقب بکنه مثل صوفی را نقد بکنه هرچکه اون صوفی شاید مثلا مشکل فروری داشته باشه مشکل اصولی نداشته باشه فقط گوشه یه رو گرفته و از نواز اتقادی شاید با ما هیچ مشکلی نداشته باشه میگه نه باید انسان چیدین باشه که مجرده اون شخصی که مثلا مریدی داره یعنی نمیدونم یک مسلک تصوفی داره نباید ما به خود اجازه بدیم که اون شخص رو کاملا مجروحش بکنیم و از دین طردش بکنیم میگینم داخله و این قضیه داخل میشه در حدیث من عادلی ولیان فقد بارزنی بالمحاره یعنی که با ولی من کسی که من دوستش دارم دشمنی بکنه با من به دشمنی برخواسته این حدیث در صحیح بخاری اومده البانی هم در سلسله صحیح بشاره میکنین حدیث سطه علت داره انی ست عیب داره در صحیح بخاری یکی از هست که انتقاد شده ما بخاری برش از جهت از جهت انتقاد شده بر خالد بن مخلد از طبوانی و از جهتی از طرف شریک متفرر شده بر بعد از خالد بن مخلد و از جهتی هم اختلاف در عطا هست که نبی رواحه یا عطا به يساره ست عیب ولات هست خالد بن مخلد شریک و عطا لیکن حدیثه متکلم علامه البانی میگه به مجموعه طرقش و به شواهدش از حدیث آناش. چون حدیث اصلش از در صحیحه بخاری حدیث ابو هریره هست شماره 6502 و لیکن گفتم حدیث شواهد داره از حدیث آیشه و حدیث انس خب میگه و تارک الانکار الباطل مما سمعه من بعض تارک الامر بالمعروف والنهي عن المنکر میتکیجا حالا چه حدیثی باشه هر کسی میخواد باشه اگر امر به معروف و نهی از منکر را ترک بکنه یه چیزی باطل رو میشته بده ساکت بشه این شخص رو اشتباه شده و تار کلنکر الواتر مما سمعهم بعد تارک الامر معروف نهی منکر کسی که چیزی بدی رو را میشنوه انکار نمیکنه این امر معروف نهی از منکر را انکار نه انکار نکرده یعنی فکر نکنید که بگه ما برحیم، ما درباره این صحبت نمی کنیم، ما نمیخوام غیبت بکنیم ما نمیخوام بدگویی بکنیم میگه اگر بدی دیدی فکری که شبهه ای پیش اومد که نه ما نه باید بدبی کسی بکنیم بدون که عدم انکارت عدم انکارت عدم انکار من رو نهی, ما. نهی از منکره یعنی که, که اشتباهی رو میبینه بعد ساکت میشه به قاطع این میگه تنش اینجا نشه فتنه نشه میاد ساکت میشه عیب اون شخص رو نمیگه احادیت موضوعش رو بیان نمی کنه بدون این شخص که نهی از منکر رو رها کرده یعنی اصلا باید برحضر باشه از این چینی زلات و از این اشتباهات که این چینی اشت караб наша ки сокит беша бар иштибоҳот дигарон бале он инзорид ал калом сави жаҳли ба марраби хурис фихтаж алайка мутахахирин аттам фақат интаджа улум лил سلوبت اجتماعه های شرائط ازدکی عرم و قبل و جده شد تحقیم میری که انسان باید شرف داشته باشه درباره مسائل عقلانی روز همینطوری میاد به خود اجازه بده که مثلا راوی را مجروح بکنه مثلا هر کسی که دنبار علم نجوم هست صاحر نیست بعد مثلا که اون شرطه که دنبال علم نجوم برای چه علم نجوم چه علم نجوم رو داره تأسس میکنه میگه این چیزی که هست حالا بین متقدمینم بوده خیلی ها مثلا همینطور مجروحش میکردن چون دنبال ستاره شناسی هست هر ستاره شناسی مزمونه ستاره شناسی وقتی مزمونه که با جن در ارتباط باشیم و دنبال جنیان باشیم و دنبال شوالده بازی باشیم پس باید مایی که چرح میکنیم بین حق و باطل بدیم از اون عدم این علم خوبه الفلسفه یه قسمتش خوبه یه قسمتش عالم نجوم هم آمدی قصه تشکویی قصه شبد. بוא تشخیص نه میگه همینطوری دید این دنبال فلسفه هست مجروح. هرکسی دیدن دنبال منطق مجروح. هرکسی دیدن در علم ریاضی مجنون. اینطوری نباید باشی. باید حق را از باطل تشخیص بدیم. و میگه که خلل واقعی که هست در جبر و تعدیل بیشتر به سبب عدم برائت و گرفتار یا متوهم بودن در خیلی از چیزا هست. فکر و افکار هست، اینکه مناهج هست که انسان تحت تایی اون واقعه میشه، جاهای به سبب جامعه، جاهای به سبب مثلا افکار و احزاب سبب میشه که انسان حقم به طرف بده، ظنی. که حالا در تایید این مطلب امام این حدیث بهش اشاره می‌کنه، از بن اکثر حدیث، یعنی با ترین دلواها، همان، ان بعض انسان مثلا بفر نه چون فلانی، فلان جز فلان طایفه است، عمدن اینجوری کرده. عمدن این دروغ گفته برزد به ما آمده خیلان گفته یعنی این چیلی زنیات و گمانیات میگه که یکی از چیزهای بدی هست که در خیلی از محدثین هم هست محدثین متعقیق خصوصا میاد بر حسب زن و زن و گمان حکم بر دیگران میدن و دیگران رو مجروح میکنن پس میگه که باید علم و تعبا باشه و اه این اه شرط و شروط تقوا و برعت چون سخته که در علم باشه به خاطر همین بحث جمع و تدیدی یک از خطرناک ترین مباحث علم حدیث هست که نباید هر کسی پاشو درش بذاره باید این شخص دور از باشه از هوا و هوس باید اون شخص تقوا و برعت داشته باشه خیلی که بتونه عادلانه منصفانه قضاوت بکنه بر دیگران و برابیان بر بله 24 آخرين مثلب مصطلح حديث المختلف المختلف. فن واسع مهم